بخش شانزده صبح حسن نیومد تا ظهر رسید گفتم صبح تا حالا کجا بودی؟ هیچ جا مدرسه. خبری نشد؟ از چی؟ تکل و اینا؟ آره نه نگفتن آخرش میخوان با هم کار کنن؟ نه از همون روز که سر سف حرفش شد تو حالا آره دیگه چیزی نگفتش ولی پر پرش تا عیده گمونم بعد که ببخشن حاضر بودم در حضور همه مدرسه ستا اردنگی آبدار عوضان یکی به هم بزنند. اما آدم را این همه توی بلا تکریفی نگذارند. گفتم. کن چه خبر؟ تو چه خبر؟ پولو جور کردی؟ جوره. ست تومنش جوره. بقیهش هم قول مساید گرفتم. اکی؟ اسم خله. انگار که گفته باشم دویست و تومان تومن گفت. چه جوره میخوای جورش کنی؟ دارم میگم دیگه از د هلک که هلک رفتی در خونه یارو فقط ازش قول مساعد گرفتی؟ آخه قول مساعدمون به چه درد تو میخوره؟ اشگول، اون به تو پول بده نیست که؟ چرا؟ گفت برام جور میکنه، دو ماهه غیر از همه ست هزار تومانی که گفتم جور کردم، انگار هیچ چیز دیگری نشنیده بود تسبه به باز، دیره، کلی کار داریم اینکه خیلی کار داریم رو خودم هم فهمیده بودم، اما مطمئن نبودم دیر شده باشد یعنی اصلا مطمئن نبودم که لازم است این کار را بکنم یا نه چون این کارهایی که اینطوری هر هرکی هر می شود برای آدم نان نمی کند حالا حوصله کلکل با حسن را نداشتم دکش کردم و از همانجا صاف رفتم پیش احسان او هم معلوم نبود سرش با کجاش بازی می کرد که سروب من را در کاشت همانجور جلوی درشان قنبرک زده بودم نزدیک بود حوصله سر برود که آقا بالاخره کلش را از درز در بیرون کرد دمپایی داداش کوچیکش را پوشیده بود. تمام پاشنه پاش از توش بیرون افتاده بود و کف دمپایی را خرد خرط روی زمین میکشید. داشت تکنه های پیراهنش را از بالا به پایین میبست و در آن واحد چیزی هم گوشه لپش میجوید. به خدا اگر با همین سر و وضع دست رد به سینه‌ام بزند، حتما یک مشت رد وسط دماغش میزدم. نک خیال کنین ارث بابام را از مردم طلب دارم، ولی اگر شما هم خودتان را جای من بگذارید شاکی شوید. اگر کسی بخواهد مردم را نامید کند، باید بهترین لباسهایی را که دارد تن کند و خیلی با وقار و معدبانه به آدم بگوید که کف دستش مو ندارد، نه نکه آنطور جلوتر که آمد میخواست شلب پا شلب روبوسی راه بیاندازد که سر به زنگاه با تذکری ساده قضیه را فیصله دادم. آن روزها همه سروش برای هفت جدن بست بود به جای ماچمالی کردن آمد کنار دستم نشست و بقیه لغمهش ر تا آخر هفته ردیفه. بابام یک چکی داره آخر هفته نقد میشه. اوه تا آخر هفته خیلی دیر میشه. زودتر نقدش کنین. دیگه فوقش تا فردا میتونم ثبر کنم. دارم میگم چکه تاریخ داره زودتر که نمیشه نقدش که خله خله گفتم خب بده دست شرخر سه سود پولش میکنه. شرخر کجا بود؟ میگم چک مشتریه هنوز تاریخش نرسیده. نمیدانم داشت سر قضیه زندانی چک دستم میانداخت یا یعنی که باباش جدا چک داشت گفتم که اینها مکانیکی داشتند و کارشان اصلا چکی نبود همیشه خلقالله را نقدی سرکیسه میکردند جنسهاشان را هم نقدی میخریدند ولی اهمیت ندادم همین که قولش مسایدتر شده بود خودش خیلی بود از همونجا گوله کردم پید این کار را هم خودم شخصاً انجام دادم وگرنه تا شب پاشنهی در خانه ما را از جا میکند سر کوچه داشت با بچه شوت یک ضرب میزد. زد تا من را دید خودش را جمع جور کرد چیکار کردی؟ اشتلق بده هستم گرفتم جون تو ناموسه گرفتی؟ بشکنی زدم و گفتم آره به قرآن دست منی زد بابا چاکره تیم دیگه یکی نبود به هم بگوید من برای چی این شغال زده شدم گفت به همین سرعت چجوری داد. قول آخر افتر رو بنداد باباش واسم چک کشید این را که نگفتم دو مرتبه پنچه شد خسته نباشی پیچون ددت بدبخت حرف پیشکی مایش شکی کاملا بیشور حالا من به درک ولی بالا غیرتن حرف زدن یک بازاریا به هرفه ای باید اینجوری باشد گفتم تو چی کار داری؟ من آخر هفته با پول میام اگه پول نبود تو بیا بگو چی هر نیاد ببینیم و تعریف کنیم ببین و تعریف کن فقط تو آخر هفته پرت به پرم نخورا هستن دوباره صبح به صبح نهیه لنگا قطیفت و جلوی درپن کنی این رو بهش گفتم که هر روز هر روز مثل تخم نابسم الله جلوی خانه سبز نشود میخواستم اگر بشود حسن را کمی کمتر ببینم بهش برخورد خیالت راحت من تو آخر هفته وقت سرخانوندن ندارم باز برم جلسه یکی از کارهایی که بازار ها به خوبی از پسش برامده اند به کثافت کشیدن لغت جلسه است این ها داد دارن روی کوچکترین کارهاشان اسمهای گنده گنده بگذارند. برای همین هر جا که گیر بیاورم ولو بشوند اسمش به شکل اسرارآمیزی جلسه می شود مثلا آن روز توی کافی شاب جلسه بود خانه اسکندر هم جلسه داشتیم حتی اینکه حسن وقت و بی وقت خفت من رو به چسبت هم برای خودش یک جو جلسه است بهش گفتم جلسه جلسه با کی لاله میاد به جای اینکه جوابم را بدهد صورتش یک رنگی شد که نمیشد گفت بنفش است یا چه رنگی؟ فوری ادامه دادم. مجیدم میاد؟ سروشم میاد؟ همانطور بنفش بود. گفتم هادی هم میاد؟ فایده نداشت. وقتی حسن این رنگی میشود ممکن است کاری کند که پشیمانی به بار بیاید و چون مدتی است که من این مطلب را میدانم را هم را کشیدم و رفتم. شما در این باره هرچی درتا میخواهد بگویید. ولی به هر حال من در شرایطی نبودم که وجود یکی مثل لاله آن هم با آن تیپ و قیافش اتفاقی معمولی در زندگیم به حساب بیاید. پیش خودم فکر میکردم که اگر یک درصد هم آن عزیزمش را از روی قصد و نیتی گفته باشد، چقدر سرنوشتم تغییر میکند. دوست داشتم چه زودتر پول جور شود که ببینم چه اتفاقی قرار است بیفتد. چند قدم که دور شدم پشت سرم را نگاه کردم که ببینم حسن حرفم را گرفته یا دارد شوت یک زربش را میزند داشت بر رو بر من را میسکید به ابل فضل اگر به هم احتیاج نداشت جا به جا گردنم را میشکست سلاح نبود بیشتر از آن توی کوچه بمانم توی خانه هم که زودتر از غروب نمیشد پا گذاشت محاسبات شرایط دوباره داشت مجبورم میکرد که در مغازه وا تا من را دید دوباره بخ کرد. می توانست جواب سلامم را بدهد یا هر حرف دیگری بزند ولی مثل اینکه دوست دوستش بخ کند. این یکی از دو دوتا شیوهی است که بلده است. یعنی یا اصلا حرف نمی زند یا حرفهایی هایی می زند که ماستت را کیسه می کند. گرچه باز اگر حق انتخاب با خودم باشد، اولی از دومی خیلی بهتر است. گفتم، آجاقا برو برو برو برو فقط سرش رو بالا انداخت. گفتم شاید توی در بایستی گیر کرده باشد. دوباره اصرار کردم. برو آجام خسته شدی. برو بالا دایی هم که دیگه پیداش بشه. برو دیگه برو من هستم. آن روی سگش بالا آمد. با تغییر چشمهاش را گرد کرد و برای حمله خیز گرفت. کافی بود یک بار دیگر اصرارش کنم. دهم باز می شلاپرم شنوپرم می کرد. من شهید این اخلاقاشم پسر جدا عاشقشم. نه به خاطر اینکه باید آقاجون ها را دوست داشت، نه، مسئله چیز دیگری است. اگر شما از نزدیک به آغاجونم نشست و برخاست کنید احتمالا فکر می کنید که من در ابراز علاقم دچار خطاهای عاطفی شده ام. اما جانم برایتان بگوید که من ملاک های خودم را برای دوست داشتن افراد دارم که خیلی هم قابل توضیح نیستند. مثلا اگر بگویم که آقاجونم را بیشتر از پدرم دوست دارم محال است حرفم را باور کنید. توی همین حیث و بیس مشتری داخل مغازه شد. دویدم پشت فر. خدا خدا می که فقط سوسیس بندری یا ماکارونی نخواهد. عد گفت ستو بندری بذار دوتا هم برگر. لعنتی. حالا که اینم که وقتایی که آقا جون دمپرم نیست ساندویش دست ملت بدهم. البته به غیر از بندری و ماکارونی که حاضر کردنشان کلی بدبختی دارد. همیشه یا وقتی خوب خوب داغ نشده از روی فربرشان میدارم یا وقتی به دادشان می رسم که کاملا سوخته باشد. از آن طرف هم پدر آدم را در میآورن که لای نان بروند. ولی عوضش ساندویچ ها را چرتر می دهم که بندگان خدا وصلله شکمشان کنند و حسابی چاق و چله از پیش من بروند. گاهی هم اگر قیافه کسی دلم بنشیند بنشیند، ن نوشابه را جلوی دستش میگذارم که راحت باشد. حتی پیش آمده که ظرف سس را بدون هیچ منتی به بعضی ها داده باشم. اگر خانوادگی هم بیایند که جعبه دستمون کاغذی را با یک پارچ آب مجانی روی میزشان میگذارم که شب خوبی را سپری کنند این کارها هیچ کدام از نظر آقا جون توجیه اقتصادی ندارند و من فقط و فقط از روی یک احساس پاک ناخداگاه انجامشان می دهم برای همینم هست که مشتری های مخصوص به خودم را دارم یادم است یک بار یکیشان به با آقا جون گفته بود یک کم می سید نود همیشه سه برابر این به ما اولویه میده آقا جون هم نگذاشته برداشته گفته نوهم غلط کرده. دو نکرده بود بگوید غلط کرده با هفت کسش. من خیلی این حرفا رو ازش به دل نمیگیرم اما او هم کم کم باید عادت کند که این رفتارهاش رو کنار بگذارد. چون من اگر خیلی هنر کنم بتوانم احترام پدر و مادر خودم را نگه دارم. آقا جون حتی نگذاشت که ساندویچ یارو رو براش بپیچم. زورکی زور چپید پشت فرو و خودش دست به شد. من هم دوم را لول کردم و رفتم بالا. مراعات سنش را کردم. پس چه کار نمیشد نمی‌شد که وسط ماغازه با پیرمرد گلاویز بشدم یا بزنم جلو مردم گردنش را خرد کنم. بالا توی خانه هم اوضاعم بهتر نبود. مامان و افتاده بودم به رفت و رو و جارو پارو. کار یک امروز و دیروز هم نیست. هر سال و آخر سال کارشون همین است. چونان همه جانو میشویند و میسایند، انگار می‌خواهند بدون حضور حتی یک باکتریو میکروب سال را تحویل کنند. روز روزش هیچکس برای دیدن من سر و دست نمیشکست حالا هم که همه بسیج شده بودن خانه را می میتکاندند تکلیفم روشن بود فقط یک شیما برایم باقی بود که آن هم شلکن کن سفکون را انداخته بود گاهی تحویل میگرفت گاهی هم نه نمیدانم چرا این کارهاشان باعث شد دلم دوباره برای لاله تنگ شود آن روزها در وضعیت روحی خطرناکی بودم که هر اتفاق کوچکی میتوانست دلم را برای لاله تنگ کند احساسم این بود که عشق می تواند زندگی من را از نابودی حتمی نجات دهد همین حالاش هم حتم دارم آزرم شهرگم را بدهم که این موضوع حتماً یک دلیل روانشناسی خوب هم دارد خیلی دوست داشتم کتابی چیزی در موردش بخوانم که البته با اتفاقاتی که بعدا افتاد قضیه کاملا منتفی شد همان اندازه که دیدن دوباره لاله کوکم می کرد از تصور نشست و برخاست به آن اسکندر نامرد و کرد. بیدرم آشوب بود انگار که کاسی آب ولرم زیر جناق سینه هم گذاشته باشم دوست داشتم سریع آخر هفته برست ببینم چی میخواهد بشود